مرحبا تایر فرخ به فرخند پیام خیر مقدم چه خبر دوست کجاره خدام یا رب این قافله را لطف ازل بدرقواد که از او خصم بدام آمد و معشوقه به کام ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست هرچه آغاز ندارد نفذیرد انجام گل زحرت بورت تنعم نفسی رخ بنما سر و خوش نیست خدا را بخورم زلف دلدار چو زنار حمی فرماید برو ای شیخ که شد ورتن ما خرقه فرام مرغ روحم که حمی زد ز سر صدر سفیر عاقبت دانه خال تو فکن در دام چشم بیمار مرا خواب نہ در قربا من لهو یقتل و دا اون دنفن کیفا ینام تو ترحم نکنی بر من مخلص گفتم زاکد اوای وها انت بتلکل ایام حافظر میل به ابروی تو دارد شاید جای در گوشه محراب کننده لکلام